هزار افزان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند مهر سلام در ارزش ارزش‌های سنتی و های فرهنگی و روانشناختی و همچنین حوادث و سواله اجتماعی جدید به زبانی ساده و شیرین بیان میشه و این خودش قسمت مهمی از میراث فرهنگی هر قوم و ملتی رو نشون میده افسانه ایرانی براتون نقل میکنم به نام افسانه ترکی راز از مردمان سرزمین پهناور خراسان برگرفت از کتاب سمندر چلگیس به گردآوری محسن مهندوستان کشاورزی روزگاری در سرزمین پهناور خراسان در روستای کوچک کشاورز جوانی به همراه مادرش زندگی میکرد پاییز بود و کشاورز جوان هر روز به کشتزار میرفت و خرمن به باد میداد یه روز از شد از کوزه آب کرار خرمن آب نوشید و برای رفع خستگی گوشهی روی زمین دراز کشید در همین موقع دید پای خرمن سوراخی پیداست کشاورز جوان از جا بلند شد و به سوراخ نزدیک شد دید که سوراخ گودالی امیق بیل زد و کمی خاک از گودال بیرون آورد بله هفت خم کنار هم چیده شده بودند و کشاورز بدون این که بذاره کسی بفهمه خومها رو یک به یک به خونش برد روزها گذشت تا اینکه مردم متوجه تغییرات اساسی در زندگی کشاورز جوان شدن. کشاورز در روستا مهمانخانی رو کنار راه ساخت و هر مسافری که میومد اونجا مفت و مجانی غذا میخواد. یه روز مسافری به مهمانخونه کشاورز جوان اومد و بعد از خوردن غذا خاص از نزدیک با صاحب مهمانخونه آشنا بشه. خلاصه مسافر رفت و با کشاورز جوان ملاقات کرد و گفت ای جوان توی شهری که من زندگی میکنم دختری زندگی میکنه که اونم مثل تو مهمون بزرگی داره و هر که اونجا غذا می خوره بعد از خوردن غذا ظرف طلای اون رو هم با خودش می بره کشاورز جوان افسانی ما نده بود که این مسافر کیه و اون دختر کیه و چرا مسافر این حرف رو اون رو خلاصه روز بعد کشاورز جوان افسانی ما بار و رو بست و راهی اون شهر شد دوونه کشاورز رفت و رفت تا به شهر رسید با پرسجو تونست مهمانخانی دختر رو پیدا کنه رفت اونجا با غذای مجانی رو خورد و دید که درسته هر که غذا میخوره ظرف طلا رو هم با خودش میبره از کسی پرسید صاحب این مهمانخانه کجاست کاریگر مهمانخانه گفت خانوم توی باغ نشستن کشاورز به باغ رفت و با دیدن دختر گفت سلام من اومدم تو بدونم این همه مال و ثروت شما از کجا پیدا شده توی این مهمون خونه مردم غذا میخورن و ظرف طلا رو هم با خودشون میبرن حتما یه رازی وجود داره من این همه راه رو اومدم که این راز رو کش کنم آخه من هم مهمون خونه دارم دختر آهی کشید و جواب داد آه، ای جوان گفتن این راز مشکله مگه مگه اینکه که بعد سکوت کرد کشاورز جوان گفت مگه چی؟ دختر گفت مگه اینکه بری و راز زیندوز رو برای من بیاری کشاورز جوان گفت خب این زیندوز کجاست؟ توی این شهره؟ دختر جواب داد، آه، اون اینجا نیست، باید بری به شهر دوری که از اینجا فرسنگ ها فاصله داره کشاورز جوان اعلام آمادگیشو برای پیدا کردن زیندوز به دختر اعلام کرد و راه افتاد کشاورز جوون رفت و رفت تا به شهری رسید که زیندوز در اون زندگی میکرد پرسید خونی زیندوز کجاست نشونی رو که گرفت رفت به دم در خونه زیندوز در زد زیندوز در رو به روی اون باز کرد و گفت با کی کار داری؟ کشاورز جوون گفت من مسافرم و تو این شهر خریبم اجازه دید امشب مهمون شما باشم فردا صبح زود از اینجا میرم زیندوز با خوشرویی گفت خیلی هم خوش اومدی بفرما بفرما مهمان حبیب خداست و بعد با گرمی از مرد کشاورز پذیرایی کرد کشاورز جوان گوشهی نشست و چش دوخت به کار زیندوزی مرد و دید که هنوز به خوبی اون زین زینی ندیده از هنر زیندوز خیلی متعجب شد زیندوز تا نیمه های شب کار کرد و کشاورز جوان حد زد که دوست فردا حتما زین رو به بازار میبره و میفروشه اما با کمال تعجب دید که مرد زین رو دوباره به هم ریخت و اون رو تیکه تیکه کرد تا نیاورد و گفت خدای من برای من عجیبه خیلی عجیبه این زین رو تمام شب دوختید اون وقت تکه تکه میکنید علت این کار چیه؟ از صبح تا شب زحمت میکشی ولی حاصل کار تو دوباره به هم می ریزی؟ گفت برای کشف این راز باید باید راز مرد پل و پز رو برای من بیاری در غیر این صورت هیچ وقت به راز من پی نمیبری. کشاورز جوون پرسید خب, خب حالا این پل و پز کجاست؟ زیندوز جواب داد چهل فرسنگ از این شهر فاصله داره کشاورز جوان بلافاصله فاصله راه افتاد طرف شهری که و پس توی اون شهر زندگی میگه اون با خودش عهد کرده بود که هر جوری شده به راز مرد زندوز پی ببره کشاورز جوان رفت و رفت تا به شهر پلوپز رسید. توی شهر به هفت پیرمرد برخورد کرد و از هر هفت نفر نشونی خونه پلوپز رو پرسید. بعد از پیدا کردن خونه پلوپز به در خونه اون رفت و آروم در زد. مرد پلوپز در رو به روی جوونه کشاورز باز کرد و گفت: کی هستی؟ با کی کار داری؟ کشاورز جوان گفت: من مسافری غریبم جایی برای خوابیدن ندارم میشه امشب رو توی خونه شما بمونم پلوپز جواب داد البته پسر جان بیا تو بیا کشاورز جوان داخل شد و صبح راحت خوابید صبح که شد مرد پلوپس از خواب بیدار شد و هفت دیگه بزرگ برنج رو روی اجاق گذاشت و اونا رو تا زور پخت. زور یک یک دیگا رو از خونه بیرون برد و به دریا ریخت و برگشت عجب که جوون متعجب شده بود که مرد پلوپس برای چی این کار رو میکنه و تمام زحمت خودش رو به باد میده دیگه طاقت نای و علتش رو از مرد پلوپس پرسید مرد مکسی کرد و جواب داد اگر می میخوایی سر از این کار در بیاری باید بری و راز پالون سیاه و علاق سیاه رو برای من بیاری. اون وقت من به تو میگم که چرا برنج ها رو به دریا میریزم. مرد این رو گفت و نشونی الاق سیاه رو به کشاورز جوون داد و اونو راهی کرد. کشاورز جوون رفت و رفت و رفت تا به شهر پالون سیاه و علاق سیاه رسید. نمونست به کجا بره و مونده بود که چیکار کار بکنه غروب که شد بدون اینکه که از کسی نشونی رو بپرسه در خونه ای رو کوبید و مردی در رو باز کرد که ارز دید که در گوشه ای ایستاده استاده حد که این خونه همونجاست که باید باشه مرد گفت ای hey جوون مثل اینکه تو این شهر قریبی و بعد با حالتی غمگین به اولاغ اشاره کرد و ادامه داد بله این هم اولاغیه که تو به یه رازون هستی و بعد کشاورز جوون رو به داخل خونه دعوت کرد و سرگذشت خودش رو برای اون تعریف کرد مرد صاحب پالون سیاه و علاق سیاه سرگذشتش رو اینطوری برای جوون کشاورز تعریف کرد من بازرگان بودم و از نعمت دنیا همه چیز داشتم یه روزی از روزها زنم به من حسادت کرد و خواست اون چرا که دارم صاحب بشه برای همینم سراغ زن جادوگر شهر رفت و گفت چوب دستیت رو به قیمت گذافی میخرم. او اون به من بفروش حالا هسته چوب دستی زنادوگر رو خرید و به خونه آورد. اگه اون ترکیه چوبی رو به کسی میزدند و میگفتند به شکل هر حیوانی دربیاد زود به همون شکل می زنم زلم ترکیه چوبی رو به من زد و به ترکیه چوبی گفت که منو به شکل خروس بزرگی دربیره این بود که من به خروس تبدیل شدم. بعد زنم منو به مرد بازرگانی فروخت. این بازرگان کشتی بسیار بزرگی داشت و با اون سفر میکرد و به کار تجارت می برداخت. یه روز دریا طوفانی شد و کشتی در حال غرق شدن بود و چون نتونستن کاری بکنن کشتی غرق شد. من و بازرگان خودمون رو به ساحل رسوندیم. من که خروسی بودم در پای درختی کنار بازرگان خوابیدم. بازرگان که خوابش برد من دیدم که از دور دودی به هوا بلنده. دویدم و دیدم که گروهی چادر زدن. چند مرد بیابونی تو این چادرا بودن و در میون اونها مردی بود که چشم از من بر نمی داشت و به دوستش گفت من فکر می این خروس آدمیه که تلز شده. من که نمیتونستم حرف بزنم، فقط سرم رو تکون دادم و قولی قوقو قغول کردم. اون مرد از من پرسید که صاحبت کجاست؟ منم با سرم راهی رو که به درخت میرسید نشونش دادم. مرد مقداری غذا به من داده گفت، اینا رو ببر برای صاحبت، حتما اونم گرسنه است. من غذاها رو گرفتم و به سراغ بازرگان رفتم. وقتی رسیدم اون هنوز خواب بود اونو بیدار کردم و غذاها رو به اون دادم بازرگان به من دقیق رو گفت تو آدمی؟ ها؟ تو رو تلست کردن؟ با سر حرف اونو تایید کردم بعد از من خواست که با اون به شهر و خونه خودش بریم اون ترکی چوبی راز رو توی خونه پیدا کرد و به من زد و من دوباره به شکل آدم درونم you بله بعد از اینکه من به شکل اول خودم در اومدم زن از راه رسید و من که از این کار زنم خیلی عصبانی و ناراحت بودم برای انتقام از اون در یه فرصت مناسب ترکیه چوبی رو برداشتم و بهش زدم و زنم به شکلی اولاغ سیاه در اومد حالا حالا مدتیه که از اون کار میکشم ولی قصم میخورم مرد صاحب اولاغ سیاه و پالون سیاه در ادامه سرگذشتش گفت خب حالا که تو به راز علاق سیاه و پالون سیاه پی بردی بهتره بری و از نزدیک اون الاق سیاه رو ببینی مرد کشابرز به کنار علاق سیاه رفت و دلش به حالون سوخت و گفت آیا تو از کاری که در حق شوهرت انجام دادی هشیمونی؟ اولاغ سیاه در جواب کشاورز جوان سرش رو تکون داد کشاورز به مرد گفت اون توبه کرده باید اونو ببخشی مرد با قاطعیت گفت نه نه نمیشه کشاورز گفت اون درد خودش رو کشیده و به اندازه کافی مجازات شده دیگه کافیه اونو ببخش مرد کمی فکر کرد و بعد به کشاورز گفت باشه اونو میبخشم بخشم و ترکیه چوبی رو به اولاغ سیاه زد و الاق به شکل زنش در اومد اشاورز جوان افثانی ما که به راز علاق سیاه و پالون سیاهش پیبرده بود راه افتاد و اومد تا به شهر مرد پلوپز رسید و اونچه که دیده بود برای اون تعریف کرد حالا دیگه نوبت سرگذشت مرد پلوپز بود مرد پلوپز بوده یه وقتی من غلام بودم تا اینکه یه روز اربابم منو به بازرگانی فروخت این بازرگان مال و ثروت زیادی داشت و فقط با تنها دخترش زندگی کرد. یه روز به خونه اومد و گفت باید به سفر بریم خلاص قاطرها رو بار کردیم و به راه افتادیم یه گوسفند هم به همراه خودمون بردیم رفتیم و رفتیم تا به ای رسیدیم بازرگان یا همون ارباب من گفت همینجا اتراق کنیم اون گوسفند رو سر برید و پوس اون رو روی من انداخت و با تناب محکم کرد و بعد رفت و پشت تخت سنگی پنهون شد برباب من تا نزیخی های همچنان پشت تخت سنگ پنهون بود تا اینکه که بزرگی از راه رسید و با یه حرکت منو از زمین برداشت و به آسمون بود وقتی به خودم اومدم دیدم روی یه تخت سنگم و راه برگشت نداره. خوب که به اطرافم نگاه کردم دیدم که ای خدای بزرگ این جزیره کوچیک پر از تلاو و جواهد اربابم توی ساحلی ایستاده بود من فریاد زدم من تا کی باید تو این جزیره زندانی باشم اربابم جواب داد تا زمانی که بتونی از اون طلا و جواهرات برای من به ساحل بریزی منم هر تونستم طلا و جواهر به ساحل ریختم و اون قاطراش رو بار کرد و رفت در این موقع چندتا ماهی از آب دریا بالا اومدن و برای من پلی بستن و من موفق شدم با عبور از اون پل خودم رو از اون جزیره نجات بدم من کس از دست اربابم خیلی اوانی بودم تغییر قیافه دادم و از مردی خواستم که منو به بازار ببره و دوباره به اربابم بفروشه خلاصه دوباره شدم غلام اربابم چند ماه با بازرگان یا همون اربابم زندگی کردم تا اینکه روزی اربابم صف کرد و خلاصه دوباره بار و بندیلمون رو بصلیم و برافت این بار هم ارباب از من خواست توی پوست گوسندی که سر بریده بود برم گفتم ای ارباب من نمیتونم این کار بکنم بهتره یه بار شما انجام بدین تا من بگیرم بعد برم توی پوست و بازرگان توی پوست رفت و همین که خواست بیرون بیاد من تناب رو مکم کشیدم و اونو توی پوست زندونی کردم بعد خودم گوشه ای رفتم و پنهون شدم دیدم سی از راه رسید و پوست رو برداشت و جزیره برد ارباب تنها مونده بود و نمیدونست چیکار کار کنه فریاد زد و گفت من بد کردم اما تو بد نکن گفتم از اون روز من غلام تو بودم از این ساعت تو غلام این طلا و جواهرات باش بعد به شهر برگشتم یه راست به خونه اربابم رفتم و از دخترش تقاضای ازدواج کردم اونم قبول کرد از اون روز من برای ماهی هایی که به من کمک کردند برنج میبزم بله، بالاخره جوان کشاور زرسانه ما به راز مرد پلوپز هم پی برد بنابراین به راه افتاد و رفت سراغ مرد زیندوز جوونی که شاورز افثان ما به نزد مرد زیندوز رفت و تمام اونچه رو که شنیده بود برای اون تعریف کرد مرد زیندوز گفت خوب حالا وقت اون رسیده که سرگذشت منو بشنوی من یه روز مشغول دوختن زین بودم خسته شدم پسر و دخترم رو بغل کردم و به خونم رفتم مره پابلندی از کنار خونه ما رد شد و دخترم وقتی اون مرغ رو دید گفت پدر این مرغ چقدر زیباست اونو برام بگیر و من هم دویدم که اون رو بگیرم، همین که پای اون رو گرفتم مرغ به پرواز در اومد و منو به هفت طبقه آسمان برد، سالها در اونجا موندم، اونجا ازدواج کردم و از صاحب دو فرزند شدن، یه روز همونطور که توی کوچه نشسته بودم همون مرغ اومد و رد شد و دخترم که کنارم بود از من خواست که اون مرغ رو براش بگیرم منم دویدم و پای مر رو گرفتم و اون منو آورد به جای اول که همین همینجاست دیدم که نه زن دارم و نه فرزند اونا مرده بودن از قصه شب و روز زین درست میکنم و از قصه دوباره به هم میریزم کار من شده این بله جوون کشاورز دیگه حالا به سراز افسانه ای ما پی برده بود و رفت سراغ دختری که صاحب مهمونخونه بود. همون اینکه هر کسی توی خونش غذا میخورد ظرف طلا رو هم با خودش می برد. دختر با دیدن جوون کشاورز گفت من پدر مادری داشتم و در کنارشون به خوبی زندگی می کرد. یه روز من که کیمیاگر بود همه مردم شهر رو به خونش دعوت کرد و به اونا غذا داد مردم با خوردن غذا احساس سوختگی کردن و بعد هم به مجسمهای طلایی تبدیل شدن. پدر و مادرم هم جز اونا بودن و من موندم و اموی کیمیاگرم یه روز امون به من گفت برات یک غذای خوشمزه پختم مهمون منی و منو با اصرار به خونه خودش بود. و منو دعوت به خوردن کرد. اما من قبل از خوردن کاسی غذای خودم رو با کاسه غذای اموم عوض کردم. وقتی شروع به خوردن کردیم اموم کاسه رو که سرکشید فریاد زد. سوختم سوختم سوختم. و من تا تونستم به طرف بیابون دویدم و رفتم به انباری که آدمهای طلایی در اونجا بودن. هرچه بود برداشتم و به خونه آوردم بله این راز منه رازی که سالهاست توی سینم نگه داشتم کشاورز جوون بعد از پی بردن به راز دختر مهم دار راهش رو گرفت و رفت به روستای خودش هفت طلا برداشت و نزد دختر برگشت و مدتی بعد با اون دختر ازدواج کرد. و به خیر خوشی با هم زندگی کردند و تا تونستن به مردم میکی افسانه ای ایرانی ترکهٔ راز رو از مردمان سرزمین پهناور خراسان براتون نقل کردم برگرفته از کتاب سمندر چلگیس به گردآوری محسن مهیندوست دوست بسیاری از نویسندگان از جمله شکسپیر، هانس کریستیان اندرسون، جناب حافظ، سعدی و فردوسی و دیگر نویسندگان از افسانه ها برای نگارش کتاب های خودشون تاثیر گرفتند. برمی هزار رفسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت پور ویراستار الهام اشجع، اجرا مهران روستی صدابردار مریم حق نظری یکننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرو.